اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و الذاریات ذروه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر سوگند به بادهایی که ابرها را به حرکت در می وقرا. سوگند به آن عبرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند و سوگند به کشتی هایی که به آسانی به حرکت در می آیند و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند که آن که به شما بعد شده قطعا راست است. و, و بی شک جزای اعمال واقع شدنیست ذات قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست اینکم لفی قول مختلف؟ که شما در قیامت در گفتاری مختلف و گوناگونید تنها کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حق باز می سند کشت باد دروغ گویان و مرگ برانها الَّذِينَهُمْ همانها که در جهل و قفلت فرو رفتهند یسلون و مدیین و پیوست سوال می کنند روز جزا چه موقع است یا او و مع اون همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند فتنتکم نتک الذي اونتونبی دست تعجلون؟ و گفته می‌شود بچشید عذاب خود را این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید این الملتقین فی به یقین پرهیزگاران در باغ‌های بهشت و در میان ها قرار دارند آخذین ما آتاهم ربهم این هم قبل ذلك محسنین و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت میدارند زیرا پیش از آن در سرای دنیا از نیکوکاران بودند کانون قلیلا من ما يهجعون. آنها کمی از شب را می و بالاسحار هم يستغفرون. و در سهرگاهان استخبار می کردند و, و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود و, الارض و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و, و در وجود خود شما نیز آیا کیست؟ آیا نمی بینید؟ و, و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود. وَرَبِّ السماء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثلما إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است همان گونه که شما سخن میگویید هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين آیا خبر مهمان بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو او گفت سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته اید فَرَغَ پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوشاله فربه و بریان شده ای را برای آنها آورد. فَقَرُبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تأكلون. و نزدیک آنها گذارد ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمیبرند. گفت آیا شما غذا نمیخورید فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخاف وبشروه بغلام علیم و از آنها احساس وحشت کرد گفتند نترس ما رسولان و فرشتگان پروردگار تویم. و او را بشارت به تولد پسری دانا دادند فاقبلت امراته فی صره فصدت وجهها وقالت فصدت عجوز عقیم در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که فریاد میکشید به صورت خود زد و گفت آیا پسری خواهم آورد در حالی که پیرزنی نازا هستم وقالوا كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم گفتند پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست قال فما قضاكم ابراهیم گفت ماموریت شما چیست ای فرستادگان خدا قالوا سिना الى قوم مجرمين گفتند ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم لين ورسيل عليهم حجاره من طين تا بارانی از سنگ گل بر آنها بفرستيم مسوما عند ربك للمسرفين سنگ هایی که از ناحیه پروردگارت برای اصراف نشان گذاشته شده است ما مؤمنانی را که در آن شهرهای قوم لوت زندگی می کردند قبل از نزول عذاب خارج کردیم ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم و ترکنا فيها آیه للذین یخافون العذاب العليم. و در آن شهر های بلادیده نشانی روشن برای کسانی که از عذاب دردناک میترسند به جای گذاردیم و فی موسی اذ الى فرعون بسلطان مبین و در زندگی موسی نیز نشانه و درس عبرتی بود هنگامی که او را با دلیلی آشکار به سوی فرعون فرستادیم او مجنون اما او با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت این مرد یا ساحر است یا دیوانه فَاخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمَ ازین رو ما او ولشگریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در خور سرغنش بود و فی اذ ارسلنا علیهم الريح العقيم و هم در سرگذشت عاد آیتی است در آن هنگام که توند بادی بیباران بر آنها فرستادیم ما تذر من اتت إلا جعلته که بر هیچ چیز نمیگذشت مگر اینکه آن را همچون استخانهای پوسیده می ساخت و نیز در سرگذشت قوم سمود عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد مدتی کوتاه بهرهمند باشید و سپس منتظر عذاب فعتو عن امر ربیهم فأخذت وهم و آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و سائق آنان را فرا گرفت در حالی که خیر خیر نگاه می کردند بیان قدرت دفاع داشته باشند فمسقا قیمی اون و مکنون تغیرین چنان بر زمین افتادند که توان برخواستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند وقامم حیم قبل این نهکن اون قم فسیقین همچنین قوم نوح را پیش از آنها حلاق کردیم چرا که؟ قوم فاسقی بودند و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده ای هستیم و من کلی خلقنا زوجین و از هر چیز یک جفت آفریدین شاید متذکر شوید ففروعیلالله اینی لکم منه نذیر مبین به سوی خدا بگریزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده ای آشکارم ولا تجعلوا مع الله لكم و با خدا معبود دیگری قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم كذلك ما أتی الذین من قبلهم من رسول إلا, إلا قالوا ساحر أو مجنون اینگونه است که هیچ یانبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر اینكه گفتند او صاهر است یا دیوانه اتواصوا به بل همقوم آیا یکدیگر را به آن سفارش می کردند که همه چون تهمتی بزنند؟ نه بلکه آنها قومی تقیان گرند عنهم فما انت بملوم. حال که چون این است از آنها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی بود و, و پیوست تذکرده زیرا تذکر مؤمنان را سود میبخشد وما و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون من جن و انس را نیا جز برای این که عبادتم کنند ما أريد منهم هرگز از آنها روزی نمیخوام و نمیخواهم مرا اطعام کنند خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب فلا يستعجلون. و برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است همانند سهم یارانشان از اقوام ستمگر پیشین بنابراین این عجل نکنند فويل للذين كفروا من يومهم پس وای بر که کافر شدند از روزی که به آنها بعدی داده می شود